طفحه دویست دو هفت اوایل این سال وقتی پولش با فروش سه چهار تا قالیچه و دیوار به صد و بیست دومان رسید، یک شب دل به دریا زد و پیش میرزا از رفت. توی تکیه منتظرش شد، تا از خانه ملک آرا آمد بیرون جاوید رفت جلو سلام کرد و آنچه در دل داشت به میرزا از گفت مباشر ملک آرا هنوز با همان لباده سیاه و کلاه سیاه و قد دیلاق شکل سفیر جهودهای خیبری در دربار ملک آرا بود. با چشمهای ریز مارمولکوار جاوید را خوب برانداز کرد و حرفایش را گوش کرد. جاوید می‌دانست این موقعیت خوبی برای میرزا از قرخان است. چون شنیده بود او میرزا از که کم کم دلش داشت از دست ملک آرای خانه نشین سرد می این روزها برای خودش زندگی و کسب دست و پا می کرد. میرزا از قرخان خانه و ملک تازهی سر کوچه چاله سار نزدیک میدان گلوبندک خریده بود و می خواست از این ملک به قول خودش چند باب دکان بندازد بیرون چون محله داشت کم کم رومی آمد. اما میرزا قرخان بعد از گوش کردن به حرفهای جاوید و برخلاف انتظار جاوید کوچکترین ای نشان نداد و بعد از آنکه مطابق عادتش لوله‌های دماغش را یک سوراخ پس از دیگری توی کوچه خالی کرد او هم مانند لیلا به جاوید گفت بهتر است خریت نکند پولش را حرام نکند به جاوید پیشنهاد کرد با آن پول از خود میرزا قرخان یک شش زمین بخرد یا یک خانه مرقوب بخرد که بتواند از برش چند تا دکان حسابی بیرون بیاندازد که آینده و سرقفلی حسابی داشته باشد. جاوید سرش را تکان داد. او خواهرش را میخواست. میرزا از گفت این حرفا را نزن. شازده هیچ خوشش نمیاد. برای خودت هم هیچ خوبیت نداره. هر وقت شازده خودش بخواد ولت میکنه. هنوز دنیا دست اینهاست. هاست. جاوید گفت. من فقط خواهرم را می‌خواهم. این حرفها رو ول کن. گفتم هر وقت شازده خواست ولتون میکنه. چه وقت؟ میرزا اسقرخان با دهان بسته خنده ریز و زشتی زد. گفت: به خر گفتن چه وقت به ده میرسی؟ خر گفت از سیخکی بپرس. ما سیخکی نیستیم بچه ما خر بار کشیم. تو هم کوزه خر بار کشی. هر وقت شازده خواست تو به ده میرسی. هر وقت خودش بخواد، لابود آبجیت رو میاره پهلود میگه حالا پاشین برگردین یشت، یا هر خراب شده ای که میخواین، اما نه زودتر و نه دیرتر. اگه تو هم حالا آدم شده باشی، باست بفهمی که اینجا موش دست به عصا راه میره، اینجا خر خاکی هم دست به عصا راه میره، شاهزاده ملک آرا پشر رو روی هوا نل میبنده و بس به کالسکش میبنده، بلن هستی، باش، تا بعد خدا بخواد شازده چی بخواد، همین که هست. بودور که واردور جاوید دل سرش را پایین انداخته بود. در این وحشت درونی بود که نکند آنها بلایی سر خواهرش آورده باشند که میرزا از اینطور سرد و مطلق جواب میداد و آب پاکی روی دست او می ریخت. خواست بپرسد آیا خواهرش زنده است یا نه. اما از جواب ترسید، داشت تصمیم میگرفت به میرزا از قرخان بگوید که ابوتراب به او گفته بود وقتی پولش به دویست و پنجاه رسید، پیش او پیش ابوتراب برود تا معامله کنند. اما ترسید این حرفش بین این دو مرد را شکراب کند و این اختلاف هم دردی را برای جاوید دوا می کرد. ساکت ماند، می هرچه هست، دستم کم روزنه امیدش به سوی ابو کور نشود. اما میرزا از که حالا توی چشمهای جاوید را نگاه میکرد، انگار فکر او را خواند گفت، پیش قاضی و ملقبازی نکنی انچوچک که بد میبینی. این حرفا رو هیچ جای دیگه پیش هیچ کس دیگه هم نزن که هیچ گمبت نگه ندارد گوز. علن خصوص به ابو هیچی نگو، هیچی، یه دونه یه شاهی سیاه نده، که اون دنگ لات شارلاتان یه روده ی راست تو رو شیکمش نیست. هزار تا چاغو بسازه یکیش دسته نداره. فهمیدی؟ بند کیفت رو هم شل نده. تو توی این خونه دو سه ساله که علاوه بر تمام بلاها و مكافات زحمت کشیدی. عرق خون ریختی. سن نار را سه شاهی کردی. پدر و مادرت و همه چی رو روی این چند قاز گذاشتی. بیخودی خودی سرمایت و و حرس نکن. بزار آخر سر که میخوای از این محله بری یه شوسه بنگی ته کیست باشه. نه این آخرش آخرشم دست خالی یه پا چاروق و یه پا گیوه برگردی ولایت. نظر یه سال روزه گرفتی آخرش با فضله سگ افتار کنی. میرزا از با این حرفها بد جوری توی دل جاوید را خالی کرد و جاوید آن شب با دل مرده تر از هر شب به خانه رفت و توی اتاقکش خوابید دردل شک و تردید افتاده بود که به راستی درباره پیدا کردن افسانه باید چه کند؟ آیا ابوتور را میدانست او کجاست؟ آیا به جاوید کمک می کرد؟ عاقبت چه می شد؟ آن شب جمعه در اثر اصرارهای خیلی زیاد رقیه بگم که حالا با جاوید مانند مادربزرگ پیر مهربانی رفتار میکرد تلش سوخت و راضی شد پیرزن را به زیارت صحن حرم شاهزاده عبدالعظیم ببرد پیرزن ماها بود میگفت میخواهد برای برآورده شدن مراد جاوید و پیدا شدن خواهر گم شده‌اش به سقا خانه حرم دخیل ببندد شاید حضرت عبدالعظیم خودش به دل ملک آرا برات کند جاوید مدت‌ها بود این حرفها را نشنیده گرفته بود پیرزن خودش هم آرزو داشت و میخواست پیش از اینکه مانند خواهرش یک شب تاب کند و بیفتد و بمیرد یک بار دیگر پایش به یک حرم متحر برسد لیلا هم گرچه چنین اصراری نداشت، اما برای این از خانه بیرون بروند، جاوید را مجبور کرد که آنها را تا دم در حرم حضرت عبدالعظیم ببرد. جاوید بالاخره در این شب جمعه، پس از اجازه از میرزا از قرخان، پیرزان و لیلا را برداشت، رقیه بگم را کول کرد و لیلا را دنبالش انداخت و پیاده به شهر ری رفتند که رقیه بگم زیارت کند و دخیل ببندد. گوشه ای نشست و گریه کرد، با دل گرفته یاد آتش پاک آتش کده افتاد، یاد آن هوای آرام و آتشناک، بوی عود و استند و کندر و لبان با دلتنگی کهنه در سینهش موج میزد. چهل و شش صفحه دویست و یازده در این سالها بود که ملک آرا برای پرداخت مالیاتهای عقب افتاده و چند فقر قرصهای دولتی ادانه شده از طرف دولت سخت زیر فشار بود. و حالا سخت گیری و بدبینی خودش هم به وضع جاوید بیشتر بود. چون لابد می ترسید اگر قرار توقیف او صادر شود و کار به بازجویی و غیره برسد جاوید نقطه روشنی برای او نباشد. و در این سالها بود که جاوید کم کم شروع کرده بود گهگاه بنشیند هرچه به سرش آمده بود بنویسد. میخواست این نوشته ها نه به صورت خاطره بلکه به صورت سندی از شرح حال او باشد. میخواست همه چیز را شرح بدهد، ثبت کند، گوشه‌ای بگذارد که اگر یک شب بلایی سر او آمد حساب ریخته شدن خون پدر و مادرش و سرگذشت خواهرش روشن باشد. اوایل سال 1307 که به حکم دولت همه مجبور بودند بروند برای خودشان شناسنامه بگیرند، میرزا از او، لیلا، فرقیه بگم را با خودش به اداره ثبت احوال توی خیابان جلیل برد. بود. نزدیک کلانتری هشت که برای آنها شناسنامه بگیرد، سن جاوید را حتی با آنقدر ریزه و صورت بچه سالش گفت به دروغ سی سال نوشتند، که جاوید از خدمت اجباری که تازگیها برای نوزده ساله ها وضع شده بود معاف و در خانه نگه داشته شود. جاوید نتوانست جلوی این دروغ را بگیرد چون معمورین سبت از میرزا از حساب می بردند. نیرزا به آنها گفته بود جوانک دهاتی ناقص العقل و از نوکرهای خیلی قدیمی شازده ملک آراست. اما جاوید بالاخره به اصرار برای خودش به نام جاوید پور فیروز شناسنامه گرفت، دستکم نام و پشت خود را نگه داشت. برای لیلا و رقیه بگم نیز به نام خانوادگی خراسانی شناسنامه گرفته شد و لیلا از آن تاریخ زوجه رسمی او ثبت شد. جاوید هنوز تصمیم و آرزوهای زیادی داشت که در آینده به کجاها باید برود چه کارهایی بکند؟ اما همه چیز به بومبست پیدا نبودن افسانه می رسید. یک بار احمد یکی از پسرهای قلوملی را توی کوچه درخونگاه دید که حالا به اسم احمد زاقی علق خور و چاقوکش معروف محل شده بود. جاوید با او یکی دو ساعتی حرف زد و از او درباره خواهر خودش و آنچه که نوکرهای ملک آرا با آن بچه کرده بودند پرسید. احمدزاقی مست بود خیلی حرفها میزد اما معلوم بود خبری نداشت و راست میگفت تا آنجا که او یادش بود انگار بچه را ابوتراب با یک نفر دیگر شب بعد از مردن مادر جاوید به باغ اوین برده بودند بعد شنیده بود بچه را به باغ کن انتقال داده بودند اما بعدها که احمد و خانوادهش یک سال سیزده بدر به در به باغ کند رفته بودند و تمام روز همه جای باغ دویده بودند توت خورده بودند قایم باشک بازی کرده بودند، بچه فیروز خان در باغ کن نبوده. لابد باز جایش را عوض کرده بودند، لابد دوباره بچه را به باغ اوین برگردانده بودند. هیچ کس نمیدانست. جاوید اکنون میدانست مطمئن بود که افسانه در باغ اوین هم نیست. او خودش یکی دوبار یواشکی به هوای خرید تا بالای شهر و به اوین رفته بود و خوب پرسجو کرده بود. افسانه آنجا نبود و بنابراین برای هزارمین بار به همان نقطه اول از دایره ابوس رسیده بود. اکنون که آزادی عمل بیشتری داشت و می خودش یک شب هر شب از این محله و سرنوشت شوم فرار کند بیرون برود، فکر افسانه او را پای بند کرده بود. روزها و شبهای زندگیش میان تاریکی و قبار با چنگ زدن به دانه های نور امید که در آسمان تیره پرواز می‌کردند میگذشت چه بیداد، چاه بیفریاد زندگی خودش را دریابد یا تلاش برای افسانه را ادامه دهد. خودش یا افسانه. گاهی شبها که زیر نور چراغ نفتی کتاب میخواند به لحظه ای از یک کتاب تاریخ دنیا که از داریوش قریشی گرفته بود و خانده بود فکر می‌کرد. به لحظه ای که از تاریخ اولیه مسیحیان در روم فکر می‌کرد. که رومیان زنها، بچه ها و مردهای مسیحی اسیر را برهنه جلو شیرهای درنده و گرسنه در یک گودال بزرگ میانداختند خودشان دور تا دور گود می نشستند و با خنده و تفریح با بیبند و باری شراب و شیرینیخوران صحنهٔ تکه پاره شدن و خورده شدن اسیران را تماشا میکردند جاوید در نوزده سالگی در این شبهای عبوس تنهایی ویران شده و عقیم به این صحنه و لحظه تاریک فکر میکرد خودش را هم میان گودال میدید که میان شیرهای کابوزها و دردهای درونی خودش تکه پاره میشد اهل خانه ملک آرا و تمام اهل محله وزیر دفتر تماشاچی بیبند وبار او بودند اما با این تفاوت که او عزیزی هم میان آن تماشاچیها داشت که میان آنها بود و گریه میکرد حواسش به کجا باشد؟ به روح و زندگی خود نگاه کند یا به دنبال خواهرش بدود، چشمش به شیرها باشد که او را پاره می کردند، یا به میان تماشاچیها که خواهرش را وسط خود گرفته بودند و شکنجه می دادند. و میان خوابهای آشفته آن شبهایش خوابهایی که مدام تکرار می شد، او هر شب باز به دشتهای کویر برمیگشت. از قنات درازی که از زیر دشت و ایران زمین به انتهای افق و زمان می رفت، آب می نوشید. امروز آب ناپاک و زهرالوده بود. او جان می کند و می مرد، اما مرده نمی ماند. جان کندن تدریجی و مرگ مداوم در دستگاه گردش خون او رفته بود. و دو سال دیگر به این ترتیب گذشت. چهل صفحه دیویست بهار سال 1309 شمسی که جاوید 22 سالش بود و قرار بود پسر ملک آرا دکتر کیومرسخان و سریا خانم از فرانسه بیایند، ملک آرا خودش وضع خوبی پیدا نکرده بود. در شهر شایع بود که قرار توقیف او صادر شده است و انقریب است که او را بگیرند و به خاطر مالیات‌ها و قرص هایی که به دولت داشت محاکمه کنند. این شایعات در یکی دو سال گذشته هم وجود داشت، اما ملک آرا با دیدن این و آن در وزارت های دادگستری و دارایی و همچنین در شهربانی کل کشور خود را آزاد و سر و مر و گنده نگه داشته بود. برای تظاهر به بیپولی، عصبهای مردنی و کالسکه های اش را فروخته بود. ابو به پیر و الکلی را هم که حالا در دسری شده بود اخراج کرده بود شایعه بود که ملک آرا تقاضای گذرنامه تذکره برای رفتن به زیارت کربلای معلا و نجف اشرف کرده بود و با خروجش مخالفت میشد. ملک آرا تذکره قدیمی داشت ولی حالا میگفتند های قدیمی اعتبار ندارد باطل است ملک آرام میرزا از را با دوندگی و کارتاق کنی چند نفر از آشنایانش در دستگاه دولت مشغول گرفتن گذرنامه تازه کرده بود. بیرون از بازارچه های وزیر دفتر و معیر و در خونگاه شهر تهران اکنون داشت به صورت مدرن و ای شکل می گرفت. خیابان‌های په با سنگفرش و جویبندی و حتی با آسفالت و درخت‌های چنار و ساختمان‌های تازه ساخته می‌شدند. بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و حتی چند تا موزه ساخته می‌شد و فرهنگ باستانی ایرانی حرفش به میان می‌آمد. حتی به دستور رضاشاه مردم مجبور بودند اباها و جبه ها و لباده ها و امامه های عربی و هندی عجیب و غریب را در بیاورند دور بریزند لباس های ساده و یک شک که شامل کت و شلوار و کلاه پهلوی بود بپوشند خود ملک آرا هم با وجود اینکه وضع و حکومت تازه را دشمن زندگی خود می دانست در ظاهر همرنگ جماعت و سیاست تازه شده بود. خیات آورده بود، داده بود چند دست و شلوار به رنگهای سیاه، سرمهی، آبی، قهوه‌ای، خاکستری شیک دوخته بود می پوشید و کراوات شیک می زد. گرچه سیبیل کلوفت و سیاهش را هرگز نتراشید اما این روزها سلمانی مخصوصش ای دو روز می آمد سر و صورت او را اصلاح میکرد ملک آرا با کلاه پهلوی لبدار و شق و رقی که داشت و اینکه دودی و اسای مرسع گهگاه توی کوچه دیده میشد و همیشه میرزا از یا یکی از نوکرها دنبالش بودند. ملک آرا قیافه و تصویر تازه‌ای در تاریخ خودش و تاریخ محله و شهر یافته بود. جاوید این تغییرات را با دقت مطالعه می و مثل همیشه موازه به ملک آرا بود که حالا حتی با جاوید هم نرمتر شده بود. چند مرتبه ایستاده بود با جاوید حرف زده بود. او را به اصطلاح نصیحت کرده بود. زندگی خود جاوید تغییرات زیادی نیافته بود. او هنوز استقامت می کرد و مشغول پول جمع کردن و مترسد یافتن هر فرصت برای پیدا کردن افسانه بود. پولش حالا به حدود 160 تومان رسیده بود و او آن را از ترس لیلا و نوکرهای دیگر آخرهای سال 1307 که شنید بانک ملی ایران باز شده یک روز پولهایش را جمع کرد آورد خیابان علا در بانک گذاشت. یک هفته پیش از بازگشت دکتر کیومرس خان و سرعی خانم، ملک آرا دستور داد جاوید، لیلا و رقیه بگم به حیات خلوت خانه خودش بیایند و در اتاقهای قدیمی قلوملی و نن احمد مستقر شوند. عبدالرحیم نوکر تازه را به آن حیات فرستادند. دادند. بنابراین پیش از اینکه سریا خانم برگردد، جاوید به شغل شریف نوکر مخصوص ملک آرا بودن ارتقا یافته بود. تمام اتاقهای آن حیات را دوباره فرش کردند، اساسه و مبلمان شیک و گرانقیمت و همه جور وسایل زندگی دیگر خریدند. بنای قدیمی حیات ویژه سرای خانم و بنای تازه ساز ویژه کیومرس خم شد. روزی که صرایا خانم و دکتر کیو خان پس از مدتها تعویق و انتظار بالاخره وارد شدند ملک آرا تمام فامیل به جز فامیل الدوله و, و کلیه خدمه را در حیات خودش جمع کرده بود به همه سکه ی طلا مشتلق و مجدگانی می‌داد تمام دور تا دور حیات و تکیه را چراغانی کرده بود داد دوازده تا گوسفند توی کوچه جلوی پای مسافرین سر بریدند سریا خانم لاغر و شکسته تر شده، اما رنگ و رویش خوب و و ازش شید بود، با روسری سیاه و مانتوی سیاه. بچه کوچکش را البته با خودش آورده بود. به دستور ملک آرا همه به دروغ میگفتند که سریا خانم بچه را از یتیم خانه برداشته بود که همبازی هما باشد. بچه دختر کچولو قشنگی بود به نام ژیلا و با هما که حالا ده یازده ساله بود بازی می کرد. دکتر کیومرث خان شکل ملک آرا اما لاغر و شسترفته و اروپایی نما بود با سیبیل نازک و قیتونی فوکلکروات خیلی شیک و آلامود و بوی عطر ادکلن عجیبی میداد چیزی که از این به بعد جزو بو و خوی به خصوص و همیشگی دکتر کیومرس ملک آرا شد صبحها حتی پیش از اینکه سر نماز بیستد اول باید پارچه آب داغ و لگن میآوردند او اول صاف و سوف می کرد و عطر و کلون میزد و نماز خواندن یکی دیگر از مشخصات او بود پسر ملک آرا هرگز نمازش ترک نمیشد و همیشه سر ساعت نماز میخواند ملک آرا هرچه بود مسئله نماز را آنچنان در بچه هایش و اطرافیانش فرو کرده بود و عدای این فریزه را آنقدر بزرگ کرده بود که هر کس پیوندی با او داشت، هر جا بود، هر کس بود، هر کاری می کرد، نماز نمیشد. نمی شد. خود ملک آرا هم تا آخرین ماه های زندگیش تا آنجا که جاوید او را زیر نظر داشت، نماز قلیز و پرتم خواندنش قطع نشد. به هر حال فرزندان ملک آرا آمدند و در آن حیات جا گرفتند. گرچه دکتر کیومرث ملک آرا زن فرنگی و یک بچه خودش را که می گفتند در فرنگ دارد در این سفر نیاورده بود. میگفت آمده است ببیند وضع زندگی در اینجا حالا چطور است و چنانچه موافق دلخواهش نبود برگردد و در فرانسه بماند. جاوید سرایا خانم را به جز دو روز اول بین مهمانهای حیات ملک آرا دیگر زیاد نمی دید. سرایا خانم در اتاقهای خودش بیشتر به آرامی سرگرم کار خودش و نگهداری بچه هایش بود. زندگی کوتاه چند سال اخیر در فرانسه به روحیه سرایا خانم آزادی فکر و عمل بیشتری داده یا دست کم آرامش فکری بهتری به او داده بود. با کتاب و سرگرمی های که برای بچه ها و برای خودش آورده بود، انگار حالا می توانست زندگی را بهتر تحمل کند. هما کجولو را به یک مدرسه مذهبی فرانسوی که در شمال شهر نزدیک سفارت انگلیس بود گذاشته بودند و جاوید علاوه بر سایر کارهایش مسئولیت یافته بود صبح به صبح هما را به مدرسه ببرد و هر عصر بازگرداند. کاری که جاوید آن را دوست داشت و با حرف های مداون با هما و آشنایی با فرهنگ اروپا آن را بسیار دلچسب و پر از انگیزه های مغزی برای خودش میافت. اما در عرض ماه بعد مجبور شد به علت کارهای زیاد خودش در خانه ملک آرا مدرسه بردن هما را هم به مرور به عبدالرحیم بیاموزد و به او محول کند. به هر حال از طریق هما و آشنایی با کتاب های خانم که از فرانسه آورده بود، جاوید توانست سواد فرانسه پیدا کند و معلومات خود را افزایش دهد. اولین باری که او با سرعی خانم حرف زد، همان اوایل بازگشت آنها روزی بود که سرعی خانم و کیو خان به آن حیات رفتند. جاوید در آوردن اساسه به آنها کمک کرده بود. از که کارها تمام شده بود ثریا خانم و دکتر توی باغ کنار حوض که دور آن میز و صندلی چیده بودند نشسته بودند اسرا نمی خوردند سرای خانم جاوید را صدا کرد و احوالش را پرسید جاوید با لبخند ایستاد عرق پیشانیش را پاک کرد و از آن خانم سپاسگزاری نمود میبینم که هنوز متاسفانه خواهرت را پیدا نکرده ای؟ جاوید گفت نه نه هنوز حالا باید چند سالش باشه؟ الان ده ساله است. وای قد هما. سرای خانم رو به برادرش کرد. برای او توضیح داد که این همان پسرک زرتش است که آنها صحبتش را کرده بودند. یا سرای خانم بارها صحبتش را با او کرده بود. دکتر کیومرس خان سرش را تکان داد اما چیزی نگفت. سرای خانم از جاوید پرسید. خبر تازه ای نشده؟ جاوید گفت، خبری که قطعی باشد نخیر، اما من نقشه دارم که شاید به زودی به نتیجهای برسیم. سرایه خانم گفت، امیدوارم، به چیزی احتیاج نداری؟ جاوید حدود چهل تومان کسری پول داشت تا اندوخته را به دویست به رقمی که بالاخره با ابو تراب توافق کرده بودند برساند. چهل تومان برای سرایه خانم و دکتر کیومرس ملک آرا لابد چهل تا پشیز بود، با تریج قبای ملک آرا هم بر نمی‌خورد که پسرش و دخترش به نکرش پولی می دادند. جاوید با آنها نگاه کرد. پسر ملک آرا سرش پایین بود. داشت با چاقو و چنگال نقره برای خودش هلو پوست میکند. جاوید گفت مچکرم نه خانوم. سرایه خانوم گفت مطمئنی به چیزی احتیاج نداری که از دست ما بر بیاد. جاوید گفت خودم هر جور هست جورش میکنم. دکتر کیومرس خان ملک آرا همانطور که با میوه مشغول بود گفت آها باد و قرور خوبی داره مثل جمعی خودم. جمعی پسرش جمشید بود. سرایه خانم گفت پسر خوبیه. دکتر گفت باریک کلا به هولوپوست کندنش ادامه داد. جاوید مدتی سکوت کرد. بعد گفت فرمایش دیگری با من ندارید خانم؟ نه مرسی. خدا نگهدار. اما پیش از اینکه که برگردد، سعی خانم با لحن معماواری او را صدا کرد. به او گفت، من ابو تراب را این چند روزه ندیدم. کجاست؟ جاوید گفت، روز ورود شما در آن حیات وسط جمعیت بود، اما او اخراج شده، کاری برایش نیست، باغ را هم فل کردند. سعی خانم گفت، تو خونش رو بلدی؟ درست بلد نیستم، اما می دانم جنوب شهر، یا پایین از میدان اعدام می نشیند. می توانم آن را فوری پیدا کنم. سرای خانم مدتی ساکت شد. جاوید با چشمهای نافذ او را نگاه می کرد. قلبش به تپش تندی افتاده بود. سرای خانم چیزی می دانست. پرسید. درباره ابوتوراب چیزی می به من بگویید؟ سرای خانم فقط دو کلمه اضافه کرد. اون می ابوتراب. عبو ابو تراب میداند خواهر من کجاست؟ سرایه خانم حرف خودش را تصحیح کرد. اون بردش. اون روز که اون اتفاق افتاد من یادم هست. من از دست لیلای زلیل نمرده عصبانی شده بودم و فرستاده بودمش اون حیات پهلوی خالش رو بگم. بعد اصری که شنیدم اون حیات مادر تو فوت کرده و تو را هم کتک زدند و یک گوشه بیهوش افتادی بلند شدم از راه زیر زمین آمدم آنجا گفتم تو رو بلند کردند آوردند این حیات، اما هرچه نگاه کردم بچه کوچولوی مادرت رو ندیدم. توی باغ نبود، توی مطبخ قدیمی هم نبود. گفتند آقا داده ابو تراب بردش توی یکی از باقها بذاره پهلوی سرایدارها نگهش دارند. فکر کردم حرف دروغ میزنند. یادم هست به روغیه بگم گفتم به لیلا بگوید بیاید تمام سوراخ های حیات و زیر زمین ها را بگردد اما لیلا وروچک فروچک آتشبار هم نبود گفتند قه کرده رفته یک جا قایم شده بعد من هم دیگه از ظرافتش افتادم بعد پرسیدم ابو تراب کجاست گفتند ابو تراب دختر کوچولو را به باغ بیرون شهر برده بعدها من از دهان خود ابو ترابم شنیدم که اون برده بودش اما دیگه نمی کجا و نمیگفت چطور شد. البته دستور داشت. به هیچ کس دیگه هم نگفت. حتی به میرزا از جاوید نفس بلندی کشید. حالا مطمئن بود. از سرایا خانم پشکر کرد. سرایا خانم گفت برو ابو تراب رو پیدا کن. بله. کلید محمد پیش اون پدر سوخته است. ممنونم خانوم. به امید خدا. خدا نگهدار خانوم. خداحافظ دکتر کیومرس ملک آرا سرش را بلند نکرد. جاوید بیرون آمد و به اتاقهای خودشان برگشت. پس ابوتراب بود. کلید رنج ها و رهایی او و افسانه دست ابوتراب بود. هر کوفتی بود. تلاش ها و عرق ریختن این چند سال او برای جمع کردن پول دست کم در جهت غلطی نبود. چهل صفحه دیویست بیست آخرهای شب که همه خواب بودند بلند شد، بند کشتی را روی سدرش سفت کرد، لباسش را پوشید و از خانه بیرون آمد. با قدمهای استوار از زیر بازارچه ها گذشت، پایین تر از حمام قبله گذر درخونگاه جلوه در حیات کاروان سرامانندی ایستاد. اینجا خانه زن و بچه های مرحوم قلوملی بود. پیش از اینکه وارد حیات شود، نگاهی به آن طرف کوچه کرد. اینجا هم قهوه خانه ای بود که شبها پاتوق احمد زاقی و ممد بود. گفت اول سری به قهوه خانه بزند که هنوز کمی جان و حال شب زنده داری داشت. جلو رفت، لای در را باز کرد و نگاه کرد. میان دود چپق و تریاک بخار سماورهای بزرگ، نور دوتا چراغ زنبوری و نفس و سر و صدای صلوات مردم و موج صدای نقال و کلمات عربی و فارسی قاطی، جاوید همه جا را چشم انداخت، کسی را که میخواست نمیدید، اما یک گوشه چهره غمناک آشنای دیگری را پیدا کرد. صاحب چهره تزیعی و قمناک روی یکی از تختها چنباتمه نشسته بود چرت میزد. جاوید به او اشاره کرد.